بسم الله الرحمن الرحیم بنامی خداوندی بی اندازم نهایت بارش قسم به با ستاره هنگامی که میل کند یعنی رو به او فول گذارد دوست شما نگمراه شده و نه هم به بیراه رفته از روی هوای نفس سخن نمیگوید. نیز این قرآن جز وحی که به او فرستاده می شود شخصیت مندی به او آموخت صاحب قوت و نیرو چون استقرار یافت در حالی که او در افق بلند قرار داشت سپس نزدیک شد و فرود آمد تا آنجا که به فاصله دو کمان یا نزدیکتر از آن قرار گرفت پس خداوند آنچه را وحیه کردنی بود به اش وحیه کرد دل او آنچه را دید هرگز دروغ نگفت پس آیا با او آن چی دیده است مجادله می کنید بیگمان او را بار دیگر دیده بود نزد صدرة المنتها جایی که نزدیک آن بهشت رهایشگاه است هنگامی که سدره را پوشانده بود چیزی که پوشانده بود نگاه او منحرف نشد و ب غیر نپرداخت واکن او برخی از نشانه های بزرگ پروردگار خود را مشاهده نمود آیا لات و اوزار را دیدید و منات را که سیومین و آخرین است؟ آیا شما پسر دارید و او دختر؟ به این ترتیب این به رئیس ناتمام یعنی غیر یادمانند؟ اینها جز نامه نیستند که شما و پدران شما خود بر آنها نهاده اید و برای ثبوت آن خداوند هیچ دلیل نفرستاده است ایشان جز وهم و هوای نفس چیزی دیگر را پیروین نمی کنند در حالی که هدایت قاطعی از جانب پروردگارشان برایشان آمده است آیا هر آنچه را انسان آرزو می کند به دست می آورد واقع این است که هم آخرت و هم دنیا هر دو از آن خداوند است چه بسا از فرشتگانی که در آسمان ها اند که هرگز شفاعتشون سودی ندارد مگر بعد از اینکه خداوند اجازه دهد ده آن هم برای هر کسی که بخواهد و راضی باشد به گمان آنانی که با آخرت ایمان ندارند، فرشگان را به نامهای زنانه نامگذاری می کند در حالی که ایشان به سبوت این گفته خود علمه ندارند، چیزی را جز گمان پیروی نمی کنند و حقا که گمان هرگز انسان را از یقین به یاز نمی کند بنابراین از کسی که از ذکر ما روگردانید، و جز به زندگی مادی دنیا نیندیشید اعراض کن این آخرین حدود دریافتشان است از علم بیگمان پروردگار تو به حال کسانی که از راه او گمراه شده اند است و او به شناخت رهیاب شدگان از همه داناتر است و هر آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست تا آنان را که بدی کردند به اساس اعمالشان مجازات کند و آنانی را که نیکویی کردند پاداش نیک دهند. آنانی که از گناهان کبیره و فخشا اجتناب میوزند و جز به گناهان صغیره دست نمیازند بیگمان پروردیگار تو صاحب آمرزش گسترده است او در هنگامی که شما را از زمین آفرید و حتی زمانی که شما در شکمه های مادرانی خیش به صورت جنین قرار داشتید به احوال شما داناتر بود پس خود ستایی نکنید او به حال پرهیزگاران داناتر است آیا کسی را که روگردانی دیدی و کم بخشید و بخیل شد آیا نزد او علم غیب است و او میبیند آیا و آنچه در صفیفه های موسا است آگاه نشده است و ابراهیمی که وعده خود را جا کرد که هیچ بردارنده بار کسی دیگر را برداشتن نمیتواند یعنی هیچکس کس بناهی کسی دیگر را به دوش نمی و این که برای انسان بهره جز حاصل سعی او نیست و این که سمره سعی او به زودی دیده می شود سپس به او کاملترین پاداش داده می شود و این نیز که بازگشت همه به سوی پروردگار توست و این که تنها او تعالی و تقدس می خنداند و می گیریاند و این که تنها اوست که نی می می و زنده می کند و این که اوست که جوره های نهر و مادر آفرید از نطفه هنگامی که رخت می شود و این که برمه هداست دیگر و تنها اوست که بینیا ساخت و سرمایه وشت و این که تنها اوست برولگار ستاره شعرا و اوست که قوم عادن و را حلاک کرد و نیز قوم سمود را بگونه ای که کسی از آنها را باقی نگذاشت و پیش از آنها قوم نه را نیز که ایشان از همه ستمگابتر و سرکشتر بودند و نیز های زیر و رو شده قوم لوت را کوبی پس آنها را پوشاند چیزی که پوشان پس با کدام یک از نعمتهای پروردگارت شک می ورزی این است از های پیشین نزدیک شوینده یعنی قیامت نزدیک شد جز خدا هیچ کسی آن را بیمیقاب ساختن نمی‌تواند. پس آیا از این سخن تعجب می و می خندید و گیریه نمی و شما سرگردان هستید پس خواست برای خدا سجده کنید و او را پرستش کنید